سلام. ممکن موقعیت که ما میخوایم توی این پادکست راجع بهشون صحبت کنیم، تصورش برای خیلی از سخت و برای خیلییای دیگه مثل آبخوردن باشه. چون هر روز باهاش دست و پنجه نرم میکنند. این پادکست صدای کسایی که دچار نشخار فکری، وسواس ذهنی، استراب، ADHD و چیزهای دیگه هستند. این موضوع اصلا چیز ناراحت کننده نیست. چون خیلی از مردم دنیا دچار همچین اختلالاتی هستند. و در کشورمون ایران به خاطر تابوهایی که توی جامعه و خانواده وجود داره شدت هم میگیره. اما واکنش شما در برابر چنین افرادی چیه؟ خیلی از افراد نخواسته حرف‌های میزنن که باعث آزرده شدن افرادی که دچار این اختلالات هستند میشه و حتی متوجهش هم نمیشن. حالا تمام افراد این پادکست درباره این حرف میزنن که کدوم یک از رفتارها و واکنشهای ما در برابر این اختلالات اشتباهه. چقدر لوسه، چقدر حساسه، چقدر همه رو بزرگ میکنه به نظر من که داره عدا در میاره بابا ولش کن دیگه بهش فکر نکن گفتم این لوس ها رو بذار کنار خب اولش به هر کسی بگین این لوس بازیار رو بذار کنار اصلا حرفتون براش مهم نیست ولی بعدش مغزش گزگز میکنه که به من الان گفت لوس یعنی منو یه آدم لوس با افکار لوس میبینه؟ و خب تقریبا بعد از کمی فکر کردن میگه اصلا برام مهم نیست من همینم که هستم یه بار از یکی از دوستام خیلی ناراحت بودم و باهاش خیلی بعد جور دوام شد و چند بود که بهش فکر میکردم خیلی زیاد فکرمو درگیر کرده بود تو اینه وسط اون حال بدم یکی از دوستای مشترکمون بهم پیام داد و گفتش که مشکل از توه و تو آدم بدایی داستان هستی و همه چیز تقصیر توئه و همه باید بیفته گردن تو پس من نمیخوام دیگه باها دوست باشم و اونم با هم قطع رابطه کرد و تو اون لحظه بدترین چیزی بود که میتونستم بشنم چون لایقا از اون انتظار داشتم بدون طرفگیری از کسی از هر دومون حمایت کنه و بهمون همون کمک کنه که با هم دوباره دوست بشیم و اون حالم خیلی بد کرد من یه بار میخواستم برم یه مهمونی چند تا از بچه بودن که خیلی باشون میونه خوبی نداشتم بعدش یکی از دوستام بهش گفتم که مثلا خیلی ناراحتم و نگرانم و مثلا چیکار کنم و اینا مثلا دیدمشون چجوری رفتار کنم و اینا بعدش اون دوستم برگشت گفتش که اصلا اتفاق خاصی نمیوفته فقط اینو اونو اونه که تو باهاشون مشکل داری فقط سه نفرن تو خاصی نیست در صورتی که اینو که گفت من دوباره یاد همه اون خاطرات بد افتادم و اینا حالم خیلی بدتر شد مثلا من احساس می‌کنم اون حرفی که زد حال منو بدتر کرد من چند دقیقه قبل مسابقه بسکتبال وقتی همه توی لاکر روم بودیم خیلی استرس داشتم به خاطر اینکه میترسیدم شاید نتونم گل بزنم شاید بد بازی کنم شاید توپم داده بشه نتونم گل بزنم شاید خطا بکنم و شاید بد بازی بکنم و هم ازم ناامید بشن همش هم به این چیزا فکر می‌کردم و اوور تینگ الکی واقعا و استرس خیلی زیادی داشتم و فشار زیادی روم بود و همینجور که هم تا شما فکر میکردم محلمم اومد و دید که انقدر حالم خوب نیست و انقدر استرس دارم بهم گفتش که فقط بمایی ضعیف استرس میگیرن موقع بازی و همین باعث شد که استرس هم ده برابر بشه و باعث شد که بیشتر فکر کنم و به خودم شک کنم بگم که شاید من ضعیفم هم که استرس دارم شاید بازی خوبی نیستم مثلا شاید نمید بسکت با بازی کنم این خیلی استرس من بیشتر کرد و توی بازی هم همین استرس با من بود حتی موقع گل زدن موقعی که توپو می‌دادن همش حرف معلمان پیشم بود که من بازیکن ضعیفی ضعیفیم چون استرس داشتم و همین اوور و استرس منو خیلی بیشتر کرده بود خب من چند وقتی که درگیر مسئله‌ایم که از آدم‌های مختلف و از نزهای مختلف نظرت مختلفی می‌شنم اوورتین کردن اوورتین کردن یه چیز دائمیه که ممکنه ماه یا سال طول بکشه و توی اون بازه زمانی تو هر روز حالت از دیروز بدتر میشه و به جایی میرسی که نمیدونی نقطه شروعت کجا بوده میتونم بگم که بیشترین کسایی که این موضوع رو درک میکنن همسنوسالهای هم سن و سال خودمونن این نوجوان چون توی این نس خیلی چیزا روی این آدم تجربه و مخصوصا مثلا وضعیت جامعه یا جوری که اون وضعیت روی گروه سنی خاصی تاثیر میزاره برای همین بیشتر افرادی که خودم می و هم سن و سال خودم بودن توی بیشترین بیشتر این کمک رو به من دربارش بکنن ولی خب هرچقدر اونا بخوام به من کمک کنند بازم مقدار اوورتین کردن من کم نمیشه حتی یه اوورتین کم اضافه میشه که درباره باره اینه که حالا که من اونا دوستان میدونن من اوورتین کردم نظرشون درباره من چیه و خودش این موضوع رو بدترم میکنه ولی خیلی کامنت های بدی از مامان ماباها گرفتم بهتره بگم نه فقط مامان بابا افرادی که از نسل ماها نیستن و نسله قدیمی ترن چون اونا سعی میکنن که خودشون خودشونو با نسلی که ما توشیم مقایسه کنن و کنن وضعیت جامعه و شرایط همه چیش متفاوته و اونا این فکرو دارن که توی دوری نوجوانیشون اونا هم همین چیزا رو سپری کردن و همه چی خوب بوده و حتی این موضوع بوده که وقتی که ما هم بابات این موضوع رو میفهمن و بعد چند روز که حالا یکم حال بهتره میان میگن که از افسردگی در اومد چیزی که نبوده و همه این مشکلات تو زمان ما هم بوده و انقدر جدی نیست و اینا میگذره و نباید انقدر روش فکر کنی و زمان بذاری تو بشه مثلا رو درست با زمان بذاری ولی خب نمی دونن که اینم یه مشکل خیلی جدیه که نام شاید اثر بذاره روی طرفی که داره اوورتهینگ میکنه امیدوارم بعد از شنیدن تمامی این تجربیات از افرادی که دچارشون اختلالاتی هستند تونسته باشین حداقل با یکی از اونها ارتباط بگیریم و کمی هم که شده احساس درک شدن کرده باشید این اتفاقات قطعا برای همه ماها ناراحت کننده هستش و این پادکست صدایی بود برای همه ما تا شنیده بشیم ممنون که به پادکست ما گوش کردید خدا نگهدار